تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند یقین بدانید که آنان اجر خود را یافتن، و اما تو هرگاه صدقی می‌دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت میکند آگاه شود از صدق دادن تو کسی باخبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد وقتی دعا می کنید، مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها عجر خود را یافتن. هرگاه تو دعا می کنید، اندرون خانه خود برو در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن. و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد در وقت دعا مانند بدپرستان پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید آنان گمان می‌کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می‌شود پس مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می‌داند پس شما این تور دعا کنید ای پدر آسمانی ما نام تو مقدس با پادشاهی تو بیاید اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود نان روزانی ما را امروز به ما بده خطایای ما را ببخش چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده‌اند بخشیده‌ایم ما را از وسوسه‌ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد لابد از آن تو است آمین چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید اما اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید وقتی روزه میگیرید، مانند ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید آنان قیافه های خود را تغییر می تا روزدار بودن خود را به رخ دیگران بکشند یقین بدانید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 جایی که بید و زنگ به آن زیان میرسند و دزدان نقب زده آن را می ذخیره نکنید. بلکه گنج های خود را در عالم بالا یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمیرسند و دزدان نقب نمی نمیزنند و آن را نمی ذخیره کنید. زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد.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 چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شما شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند ما بنابراین به شما می گویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید؟ زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نه میکارند نده می کنن، و نه در انبارها ذخیره می کنن. ولی پدر آسمانی شما روزیان ها را میدهد، مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست. کدام یک از شما می تواند با نگرانی، ساعتی به عمر خود بیافزاید. چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نبو میکنند آنها نزحمت زحمت و نه می ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه هشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد، ما را ای کم ایمانان،